بسم الله الرحمن الرحیم باب سالیفی تقدیم و تأخیر باب سوم در رابطه با تقدیم و تأخیر هست من المعلوم انه لا يمكن نطق به اجزای کلام دفعتا واحدتا معلوم هست امکان نداره تمام اجزای کلام رو به یک پارگی عدا کرد یک دفعه ای اونا رو همه رو گفت پس مشخص هست که ممکن نیست تمام اجزای کلام رو یک دفعه بیان کرد بل لابد من تقدیمی بعض الاجزائی و تخییر الباب بلکه ناچارن بعضی از اجزا مقدم بشن و بعضی های دیگر مؤخر بشن آه؟ وليس شيء منها فی نفسی اولا بالتقدم من الاخری و هیچیکی از اجزای کلام فی نفسی اولاتر نیست از دیگری به مقدم بودن به تقدم هیچیکی از اجزای کلام فی نفسی از اجزای دیگر اولاتر نیست در مقدم بودن در تقدم در چه؟ الاشتراك جميل الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار بخاطرين كه تمام الألفاظ الاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار بخاطرين كه تمام الألفاظ از این جهت که الفاظ هستند از این جهت که الفاظ هستند جمله رو چطوری درست کنیم بله ل الاشتراك جميع الفاظ بالحيث هی الفاظ في درجه الاعتباری به خاطر مشترک بودن به خاطر مشترک بودن تمام الفاظ از این جهت که الفاظ هستند در رتبه اعتبار با همدیگه چه هستند مشترک هستند بخاطرین که در رتبه اعتبار تمام الفاظ با هم دیگر مشترک هستند با هم دیگر چه هستند مشترک. پس تمام الفاظ از این جهت که لفظ هستند در رتبه اعتبار با هم دیگر چه هستند مشترک, مشترک هستند خوب پس علت بیان کرد که چرا هیچ لفظی از لفظ دیگر در تقدم اولاتر نیست متوجه هستید؟ توضیح داد که همه رو به بارگی نمیشه ادا کرد باید کی رو ابتدا گفت و دیگری را سپس گفت و بعد از این اومد بیان کرد که هیچ لفظی فی نفسی از لفظ دیگر در تقدم اولویت ندارد زیرا تمام الفاظ از این جهت که الفاظ هستند در رتبه اعتبار با هم دیگر چه هستند مشترک هستند با هم دیگر چه هستند مشترک هستند فلابد من تقدیم هذا و ذاک به داقین پس ناچارن مقدم کرد این لفظ رو بر اون لفظ دیگر به خاطر انگیزه ای که این،, این چیز رو ایجاب می کند. پس ناچارن لفظی رو بر لفظ دیگر مقدم کرد به خاطر انگیزهی که این مقدم کردن رو ایجاب می بشن بشن بشن بشن. بله خب حالا که بحث انگیزه رو آورد اون انگیزه هایی که ایجاب میکنن لفظ مقدم بشه چه هستن؟ فبین پس برخی از این انگیزه ها عبارتند از التشویق الى المتاخر اذا کان المتقدم و مشعرن تشویق کردن یکی از اون انگیزه ها که ما مقدم بکنیم چه تشویق کردن به متاخر یعنی اون چیزی که در آخر اومده است اذا کان المتقدم و مشعرن زمانی که لفظ متقدم نشان دهنده احساس کننده شگفتی و غرابت باشد پس یکی از انگیزه های تقدم چیست تشویق کردن به متأخر هست شما لفظی رو ابتدا میاری تا به متأخر تشویق بکنی تا به متأخرش کنی نحو والذي حارت المرية فيه حيوان مستحدث من جماعت أنت رأيك <تصفيق> الحمد لله والذي أنت زي رأيك حارت المرية فيه أنت رأيك مردم بالرابطة بأنحيرا شده أند شكفت زاده شده أند حیوان حیوانون مستحدثون حیوان است که از جماد به وجود آمده است آنچهرا که مردم در رابطه با آن حیرت زده اند است که از چه به آمده است؟ از جماد مخلوق از خاک پیدا شده از جماد پیدا شده از چه پیدا شده است؟ پس اینجا والذي حارت البریتو فیه ابتدا اومده تشویق میکنه برای چی برای جمله بعدی برای الفاظ بعدی و انگیزه دیگر چهست؟ و تعجیل المسارتی او المساعتی انگیزه دیگر اجله کردن در خوشحال کردن یا عجله کردن در بدحال ساختن مساعت حال را به هم زدن پس عجله کردن در شاد کردن سرور یا در بدحال کردن نحو العفو انکا صدر به الامورم العفو أنك صدر به الأمر العفو أنك صدر به الأمر العفو أنك ببنى اتغاد جالبه. عفو أز تو صدر به الأمر أمرش صادر شده است العفو افوه از تو یا به عفو تو صدر به هیل امر فرمان به آن صادر شده است فرمان به آن چی شده است دستور به آن صادر شده است خب اینجا چرا عفو آور جلوتر مقدم ذکر کرد؟ خاطر که طرف خوشحال کن طرف مثلا ایدامیه یا زندانه بیاد نگه که، آه به خاطر عجله کردن در خوشحال کردن و بعد افو و چه کار کرد؟ مقدمش کرد. بحث مقدم و مؤخری. یکی از انگیزه های دیگه مقدم کردن ایره. یکی از انگیزه چیه؟ شتاب کردن در شادیست، خوشحال کردن یا خوش شتاب کردن در بدحال ساختن. مانند این جمله القصاص حکم به القاضی تو که بگی حکم به حکم القاضی بالقصاص اینجا میگیست ولی اما بگی اگر, اگر ابتدا بگی القصاصو شما اینجا عجله کردی در چی در بدحال ساختن پس یکی از انگیزه های مقدم کردن بدحال ساختنه مثل این بساس مثل القصاص ابتدا آور همونطور که در مثال اولی عجله کرد در خوشحال کردن گفت صدر به افو از تو در سورش شده در سورش شده؟ اینجا گفت قصاص حکمش رو قاضی چکار کرد فسی که از انگیزه های مقدم کردن چیه؟ شتاب کردن در خوشحال کردن یا در نا راحت كردن. لا درجي. نا راحت كردن. وقول المتقدم محط الإنكار والتعجب نحو أبعاد آب بعد طول التجربة تنخدع. بهذه الزخارف مودن متقدم مودن متقدم كون المتقدم محط الانكار والتعجب مودن متقدم استقاه انكار وتعجب باشه انكاره چه باشه؟ محط یعنی ایستگاه یعنی جای فرود آمدن بله بعد طول تجربتی تنخدی او به ها به آیا بعد از اینهم همه تجربه بعد از تجربه طولانی بعد از تجربه دراز مدت با این زخروف ها با این زیبایی ها فریب بیخورید بحث فریب خوردن نیست بلکه بحث روی اینه که تو این همه داری تجربه داری تو این همه داری؟ تجربه داری پس اینجا انگیزه این که متقدمش کرد بعد طول تجربه بود اچه بعد طول آه بعد از این همه تجربه این به خاطر این مقدمش کرد که این جمله محت انکار و تعجبه محت چیه؟ آیا بعد از این همه طولانی بعد از این همه نصیحت بعد از نمیدونم فلان این کار رو داری میکنیم پس یکی از انگیزه های تقدم محط انکار و تعجب, تعجب است محت اسم مکان و زمان به معنی محل فرود آمدن محل و سلوک و سبیل ترقی و یکی دیگر از انگیزه های تقدم چست پیمودن راه ترقی و سلوک و سبیل ترقی پیمودن راه ترقی پیشرفت. خودش میگه یعنی چی؟ ای الیتیانو و یعنی اب آوردن عام اولا ابتدا ثم خاص و بعده سپس خاص بعدش پس یکی از انگیزه های تقدم پیمودن راه پیشرفته پیمودن راه چیه؟ ترقیه یعنی ابتدا عام و بیاورده بشه سپس خاص لأن العام اذا ذکر بعد خاصی لا یدل له فائده چون عام اگر بعد از خاص ذکر بشه فایده ای توش نیست اگر دقت برید اگر عام بعد از خاص ذکر بشه درش فایده ای وجود نداره حالا بابسه الان براتون واضح می کنم که چرا نحو مانند هذا الكلام صحیح و فصیح و بلیغ ببین اول عام و آورده بعدش خاص تا رو بعدش خاص تا رو این سخن صحیح هست فصیح هست و بلیغ هست هر سوهی که صحیح باشه ببینید صحیح عامتر از فصاحته بعضی سخنات سخنا از بعضی از ها صحیح هستند اما فصیح نیستند فصیح هستند اما بلیغ نیستند پس صحیح عامتره بعدش فصیح عامتره بعدش چی عامتره حالا اگر برعکس اینجا گفته بود هاو الکلام ببینید اینجا دقت کنید اگر گفته بود هاو الکلام بلیغ فسیحون فصیح الصحیح ای نداشت که بعد از بلیغ بگه فصیح چرا چون کلامی که بلیغه حتما فصیح هم هست صحیح هم هست متوجه شدید ما مصیده دقت کن هاستا رو تا خواستا رو ذکر نکرده صحیح هاستره دیگه هم همه رو میگن شما کجای ای کاری؟ اینجا دقت داشته باش؟ بگه اول آمو بیار بعدش خاص و کارو کرده دیگه صحیح آنتر از صحیحه و فصیح آمتر از بلیغه ببینید اینجا دقت کن حواظ تو اینجا بیار هر کلام فصیحی بلیغ که نیست ولی اگر گفتن بلیغ بلیغ خاصتر از فصیحه بلیغ اونه که هم فصیحه هم مطابق, مطابق با مقتضای حاله بلیغ بلیغ بله. پس اول آم و بعد خاصو فا اذا قلتا خودش داره توضیح بده بگی اگر بگوی فسیح بلیغ لا تحتاجو الى ذکر صحیح اگر تو بیای بگی هذا الكلام فسیح بلیغ اونجا فایده ای نداره که بعدش آم و ذکر کنید که همون صحیح ہے چون فسیح صحیح شامل صحیح میشه دیگه دیگه نیازی ذکر صحیح نیمونه وإذا قلت بليغ وزماني كي بيه هذا الكلام بلغون لا تحتاج إلى ذكر صحيحون ولا إلى ذكر صحيحون ولا فصيحون ديكي نيازي نيست كي بيه هذا كلام بلغون صحيحون فصيح ديكي نياز نميشه فائده يدنش خد بخود يدن باله فس يكي از انجزهاي مقدم کردن پر بودن الراه ترقیس انسان باید راه ترقی رو در ذکر کردن کلمات الفاظ بپیماید یعنی ابتدا عام رو بیاره بعدش بیاد چی رو بیاره خاص رو بیاره بهبیش شکل و دراعت و ترتیب الوجودی یکی از انگیزه های تقدیم و تأخیر فرقی نیمی مراعات کردن ترتیب وجودی است مراعات کردن ترتیبه لا هو لا ولا نو او را نمیگیرد چورت و نخاب و چی؟ خواب بله بله چورت مقدمه خوابه چورت مقدمه چیه؟ پس اون ترتیب وجودیشون اینجا رعایت شده ترتیب وجودی اینجا چیه شده؟ اول چورت بعدش چیه؟ خوابه پس یکی از انگیزه های تقدیم و تاخیر چیه؟ براعات کردن ترتیب وجودیه بله یعنی با راحت کردن ترتیبی که در وجود آمدن اشیا وجود داره در وجود آمدن اشیا وجود داره چون ابتدا چرد بیاد بعدش چی بیاد خواب میاد. خب ادامه بحث و نسو علی عبوب سلبی او سلب العبوبی یکی دیگر از اندیزه تقدیم چه هست؟ نس داشتن بر عبوبیت داشتن سلب تصریح به عبوبیت داشتن نفیه او صلب امور یا تصریح به نف آب فراگیر بودن دقت داشته باشید؟ خودش توضیحش میده فالاول اوولو یاکورو به تقدی به عدات اممور ال عدات نفی اولی یعنی فالاول يكون بتقديم عدات العموم على عدات نفی به چه شکل انجام میگیره مقدم میشه عدات عموم بر عدات نفی نحو مانند کل ذالک لم یکن دقت بکنید اینجا کل ذالک لم یکن کل از عدات چیه از عدات عمومه لم لم از عدات چیه نفیه اینجا عدات عموم که کل باشه مقدم هست بر عدات نفک که لا. لم باشه خب واقع میگه کل ذلک لم یکون خودش توضیح بده ای لم یقع هذا ولا ذا هیچ کدومی یکی از اینا نشده است نه این شده است و نه اون شده است پس تصریح به عموبیت داشتن نفیه تصریح به عموبیت داشتن چه؟ یعنی اینجا نفی عموبیت داره نه دا این انجام گرفته و نه اون انجام گرفته است. پس یکی از دقت داشته باشید انگیزه های تقدیمیره موقع که شما بیاید عموبیت نفی کنی بیاید چکار میکنی؟ مقدم میکنی عداته عام رو بر عداته نافی اگه بخوای سلب ابوبو بکنی سلب چی رو بکنی ابوبو رو بکنی کل ذالک لم یکون وقتی که شما بگی کل ذالک لم یکون یعنی ادات امر و مقدم کنی بر ادات نافی معنیش اینه که نه این رخ داده است و نه این ای لبق هذا ولا ذا و السانی اما دومی یعنی سلب ابوبو پس ناس بر سلب عموم سلب رد شد اولا سلب عموم. سلب چه؟ اموم ببینید فرق هست بین عموم سلب و سلب اموم سلب عموم چی هست؟ و الثانی دومی یعنی سلب اموم یکونو بتقديم عدات النفع على عدات الاموم دوری یعنی سلب عموم میشود با مقدم کردن ادات نفی بر ادات عموم نحو لم یکن کل ذلك لم یکن کل ذلک ای لم یقع المجموع باگ کی لم یکن كل ذلك معناش چه هست یعنی تم... یعنی همگی با هم نشودن همه با هم نشودند داره سلب عبوبو میکنه فیحتمل ثبوت البعض فیحتمل ثبوت البعض احتمال دار ثابت بودن بعضی بله اما به شکل مجموع نفی میکنه اما احتمال ثابت بودن بعضی هست ویحتمل دافی کل فرد و احتمال داره نفی هر فردی رو. پس در این دو بی احتمال داره ثابت بودن بحث و احتمال داره نفی هر فردی. آخر نه. هو ثبوت, ثبوت البعض ويحتمل نفي يعني دراسه نفيون شويه نفي لا ان فاعلش مستتر كي به ما قبلش برمي گردد نه كدوب خو اينو ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد بله بس یکی از انگیزه مقدم و مؤخر کردن تصریح بر عموم سلب تصریح بر چی؟ مم. عموم سلب یا سلب عموم یا سلب مم. که توضیح شمین هست عموم سلب مانند این کل ذا کلم یکن نه این رخ داده است و نه اون یکی نه این بوده است و نه اون یکی و اما سلب عموم این است که مجبور رو چیکار میکنه؟ لازم لازم میکنه رو نافذ میکنه. بله. و همچنین اضافه دارد داستان و تقویت الحكم اذا كان الخبر فی و یکی دیگر از انگیزه های تقدیم و تأخیر چی و یکی دیگر از انگیزه های تقدیم تقویه الحكم اذا کان و یکی دیگر از انگیزه های تقدیم و تقوییت الحکم اذا کان الخبر كردن كخبر فیل تقویت کردن حکم زمانی که خبر فعل باشه نحو الهلال و ماه ظاهر شده است اینجا چرا هلال اول آورده است ظهره رو در آخر بخاطرین میخواد بخاطر حکم و تقوییت بکنه به خاطر ظاهر بودن هلال رو چکار بکنه دیدی که بگه هلال ز... ظاهر شده این حکم رو ظاهر بودن رو چکار کنه تقویت بکنه چطوری تقویت میشه موقعی که ما اول آوردی؟ بله میگه که چطوری تقویت میشه و ذالک لتکرار الاسنات به خاطر که اسنات تکرار شده اگر میگفت ظاهر الهلال موسن یه جاوبه بده بود حالا که گفته ال و ظهرا، اینجا که هلال ذکر شده، در ظهره هم از زمیری وجود داره که به چی بریم کرده به حلال پس تکرار شده اسناد. با شدی با موسا؟ و ظهرا، اگر گفته بود ظهرا الهلال، اسناد تکرار نشده بود. ولی حالا که گفته ال هلال و ظهرا، ترکیبشی نه میشه مبتدا ظهرا فعل. فائلش هو هست فعل با فائلش میشند پس اینجا اصنات چی شد؟ تکرار شد بله چیز قشنگی اتفاقا گفته پس یکی از انگیزهای مقدم کردن اینه چرا اینجا اومده الهلالو مقدم کرده؟ بله و تخصیص و یکی دیگر از انگیزه مقدم کردن تخصیص هست چه هست نحو مانند ما انا قلت من نگفتم ما انا قلتو ما انا قلت ما انا اگر میگفت ما قلت تو من نگفتم تخصیص نمیرسوند. اما حالا که انا رو مقدم کرده تخصیص میرسونه چی رو میرسونه؟ و ایاک ایا که نعبدو خب مفعول بهی رو مقدم بر فعل کرده بر چیش کرده؟ برفیل و فاین پس اینو تخصیص میرسونه یعنی فقط تو را چیکار میکنی؟ پس یکی از انگیزه های که میشه لفظی رو بر لفظ دیگر مقدم کرد تخصیص هست قبلا گفته بود فی و فی نفسیهی هیچ لفظی بر لفظ دیگر اولاتر مگر اینکه انگیزهی وجود داشته باشه مگر اینکه چه؟ یکی از اون انگیزه هایی که انسان میاد لفظی رو بر لفظ دیگر مقدم میکند بحث تخصیصه بحث چه؟ تخصیص مانند ما انقلتو و مانند ایاک کنعبودو خب تخصیص چه هست؟ تخصیص اینه هست که شما حکمی رو برای یک چیزی خاص بکنی و از دیگران سلمش بکنی از دیگران چیکارش کارش خب بریم جلوتر. پس آخرین مورد دیگه ذکر بیشه نه؟ و المحافظت بله و المحافظت و او سجرین انگیزه دیگر از تقدیم محافظت کردن بر وزن یا بر سجع هست فالاول نحو اولی یعنی در وزن مانند اذا نطق سفیه فلا تجبه فخير من اجابته سکوت زمانی که سفیه سخن گفت جوابش رو مده پس بهتر است از جواب دادنش سکوت از جواب دادنش سکوت بهتر است اینجا فخير من اجابته سکوت خیر خبره مقدم شده بر سکوت که مبتدائه این نکره اون معرفه دیگه یعنی از سکوت من اجابتی خیر از سکوت و من اجابتی از سکوت و خیرون من اجابتی خب حالا اگر شما دقتی داشته باشید اگر اینجا تقدیم و تاخیر نمی وزن شعر چی می پس یکی از انگیزها محافظت بر وزن هست و انگیزه دیگر محافظت بر ساجع هست محافظت بر چی؟ بر ساجع وزن در شعر پیش میاد. وزن در چه پیش و وزن در نصر وزن در نصر و یعنی محافظت بر ساجع نحو مانده خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكه إجا خذوه فغلوه در إدام الشبيات ثم الجحيمه صلوه صلوه خوب بله خب این چور ترتیب رایت نشده این سجب برش محافظت شده اما اگر تغییر میکرد خذوه خضوه فغلوه ثم صلوه الجحیم آه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعن فسلکوه اگر اومده بود فصل کوهو فی سلسلتن بود موقع چی میشد سجع چی میشد به هم بیفرد پس یکی از انگیزه های تقدیم محافظت بر وزن یا بر سجع هست ولم یذکر لكل من التقدیم و التأخیری خاص خاصتن و برای هریکی از تقدیم و تأخیر انگیزه های خاصی جداگانه‌ای ذکر نشد برای هر یکی از تقدیم و تأخیر انگیزه های جداغانه ذکر نشد چرا لانه اذا تقدم احد رکن الجمله تا اخر الاخر تو زمانی که یکی از دو رکن جمله بیاد مقدم بشه رکن دیگر صد در صد در آخر دیگه امکان نداره هر دو تا رو با هم گفت دیگه ما نمیتونیم برای مقدم بودن یک سری ویژگی هایی رو انگیزه هایی رو ذکر کنیم جداگانه. و برای مؤخر بودن یک سری انگیزه های رو چکار کنید؟ ذکر کنید چرا؟ چون زمانی که یکی از دو رکن مقدم شد رکن دیگر چی میشه؟ در آخر میاد، فهما متلازمان پس دو متلازم یک دیگر هست پس آن چی هست؟ متلازم یک دیگر که این اومد جلو اون میره چی؟ عقب و این رکل اومد جلو دیگری رود. عقب تا اینجا کار اکتفا میکنیم موفق و پیروز باشید